حکایت، این حکایت شنو که در بغداد، رایت و پرده را خلاف افتاد، رایت از گرد راه و رنج رکاب، گفت با پرده از طریق اتاب، من و تو هر دو خاج تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، من ز خدمت دمی نیاسودم گاه و بیگاه در سفر بودم، تو نه رنج آزمودهی، نه حسار، نه بیابان و باد و گرد و قبار. قدم من به سعی پیشتر است، پس چرا عزت تو بیشتر است؟ تو بر بندگان محروگی، با کنیزان یا سمن من فتاده به دست شاگردان، به سفر پای بند و سرگردان، گفت من سربراستان دارم، نه تو سربراست من دارم، هر که بیهود گردن افرازد، خیشتن را به گردن اندازد.